نهم. از خودم می‌پرسم آن شبی که اتومبیل به من زد به ایستگاه شمال نرفته بودم که هلن نواشین را تا قطارش همراهی کنم فراموشی بالاخره های طولانی از زندگی من را میبلعد و گاهی هم رشته‌های بسیار کوچک میانی را پاره می‌کند در این فیلم قدیمی کپکهای نوار باعث پرشهای زمانی میشوند و این احساس را به وجود میآورند که دو حادثه با ماهها فاصله زمانی در یک روز اتفاق افتادند و حتی همزمان بودند با پخش این تصویرهای ناقص و هرز شده که در شدیدترین حد آشفتگی ذهنی یا در اوج ناامیدی روی هم سوار شدند و گاه آرام و گاه نامنظم دنبال هم می آید چطور می شود کوچکترین ارتباطی بینشان برقرار کرد دست آخر سرم گیج می رود فکر می کنم آن شب از ایستگاه شمال پیاده برمیگشتم وگرنه؟ چرا باید آن ساعت از شب نزدیک برج سنجاک و جلوی ایستگاه اتوبوس های شب رو روی نیمکتی بنشینم زوجی توی ایستگاه نشسته بودند مرد با لحنی تهاجمی سر صحبت را باز کرد میخواست آنها را به یک هتل ببرم زن چیزی نمیگفت و شرمنده به نظر میرسید مرد بازویم را میگرفت و سعی میکرد بکشدم سمت زن هلم میداد خوشگله هم؟ هنوز بقیهشو ندیدی؟ سعی میکردم خودم را خلاص کنم. ولی حسابی چسبناک بود. هر بار در میرفتم دوباره بازویم را میگرفت. زن ریشخندی روی لب داشت. مرد هم قطععا مست بود. برای حرف زدن صورتش را به صورتم نزدیک میکرد. بوی الکل نمیداد اما بوی اتکلن مسخره به اسم آکووادی سلوا میداد. با پشت بازویم محکم هلش دادم. با غیافه ای ناامید و دهانی که از تعجب باز بازمانده بود نگاهم کرد. وارد خیابان کوچک خالی و عریبی به نام کتلری شدم که نرسیده به شهرداری بود. سالهای بعد حتی تا امروز با آن خیابان می روم تا بفهمم چرا بار اولی که از آنجا سر آوردم دلم شور می زد. این دل شوره هنوز هم وجود دارد. احساس رفتن به دنیای موازی خارج از محدوده زمان فقط است در این خیابان راه بروم تا پی ببرم زمان دگرگون شده بیان که بدانم در کدام زمان حال زندگی می کنم این خیابان معبری ساده است که شبها ها مثل برخ تویش رفت آمد می کند خیابان فراموش شده ای که هرگز کسی با آن توجه نمی کند آن شب نور قرمزی روی پیاده روی دست چپ دیدم اسم جالک لانگ بود رفتم تو نور از یک چراغموشی آویزان از سقف با این می ریخت. سر یکی از میزها چهار نفر داشتند و رقبازی می کردند مردی کسی و موی مشکی داشت بلند شد و سمتم آمد شام آقا طبقه اول دنبالش راه افتادم تا راه پله آنجا هم چهار نفر میزی را گرفته بودند، دو زن و دو مرد نزدیک پنجره. اولین میز سمت چپ را نشانم داد کنار پله ها. بقیه اصلا حواسشان به من نبود، آیست حرف میزدند و زمزمشان با خنده همراه بود. کادوهای باز شده را گذاشته بودند روی میز، انگار جشن تولد گرفته بودند. شاید هم برای شب کریسمس سورچرانی می کردند. فهرست غذا روی سفره قرمز بود خواندم: واترزوی ماهی نام غذاهای دیگر با حروف کوچک نوشته شده بود و نمی توانستم آن نور زننده و تقریبا سفید تشخیص دهم. کنارم آنها از خنده ریسه می رفتند واترزوی ماهی از خودم پرسیدم مشتری های اینجا چجور آدم هایی هستند اعضای انجمنی مذهبی که با صدای آهسته به هم آدرس میدهند یا آدم های در راه ماندهای که دا ابد دور میزی جمع شدهاند چون زمان در این خیابان جریان ندارد درست نمیدانستم چرا آنجا لنگر انداختام بدون شک رفتن هلن نواشین باعث دلشورههم شده بود به علاوه یک شنبه بود و یک شنبه شبها خاطره های عجیبی مثل پرانتزهای خالی در زندگی آدم جا میگذارند. باید به مدرسه یا پادگان برمیگشتم فکرش را رو بکنید روی سکوی ایستگاهی که اسمش را فراموش کرده اید منتظر است داده اید کمی بعد زیر چراغ خواب آبی یک خوابگاه به خواب آشفته ای فرو می روید حالا خودم را توی لکلانک سر میزی با سفره قرمز میبینم و صورت غذا هم با ماهی را پیشنهاد میکند آن طرف آنها قه قهه میزدند یکی از دو مرد کلاه سیاه استراخانی داشت عینک و صورت باریک فرانزویش با آن کلاه سوارکارهای نیزدار روسی یا لهستانی تناسبی نداشت شابسکا بله اسم کلاه شابسکا بود هم میشد سرشانه بغلدستی بورش را ببوسد ولی او اجازه نمی‌داد و بقیه می‌خندیدند هر چه سعی می‌کردم باز نمی‌توانستم شریک هاشان شوم گمانم اگر سمت میزشان می‌رفتم مرا نمی‌دیدند و حتی اگر با آنها حرف می‌زدم صدایم را نمی‌شنیدند سعی کردم حواسم را جمع کنم روی جزئیات عینی لکلانگ شماره 4 خیابان کتلری شاید این دلشوره از موقعیت جغرافیایی خیابان ناشی می شد. این خیابان مشرف بر ساختمانهای بلند اداره شهربانی در حاشیه رود سن بود هیچ نوری از پنجره این ساختمانها به چشم نمی‌خورد. همچنان سر میز نشسته بودم بلکه تنها پرس زدنم را در این دور و اطراف به تأخیر بیندازم فکر چراخهای میدان شاطله هم دلم را گرس نمی‌کرد. حتی ژرمن لکسروها که دورتر بود و باید از خیابانهای ساحلی سوت و کور آنجا می رسیدم. مرد شابسکا را برداشته و عرق پیشانیش را خشک می کرد. کسی نمی آمد سفارشم را بگیرد از طرفی یک لغمه هم از گروگم پایین نمی واترزوی ماهی در رستورانی به اسم لکلانک این ترکیب چیز نگران کننده ای داشت دیگر مطمئن نبودم بتوانم بر استراب یکشنبه شبها غلبه کنم